دروغدار نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی و خدا باعث سلام و ادب خدمت شما گرامی در خدمت شما هستیم در قسمت 15 برنامه رخداد از صدای امید راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با برنامه رخداد و کلیه برنامه های صدای امید ایمیل info صدای امید.com هستش امیدواریم که تا اینجای برنامه خیلی حسلتون رو سر نبرده باشیم چون میخوایم به ریز مسائل بپردازیم و چون مدعای اصلی ما که در واقع رد کلی نظریه های نجادی هستش ما دارد ریز انتقادات و نوع برخوردی که با نظریه داروین که اساس نظریه های نجادی هستش برخورد بکنیم امیدواریم که حوصله بکنید و برنامه رو ریز دنبال بکنید تا اینکه اون بنا به اون قسمت هایی که در واقع شاید به بینن به شنونده خیلی جالب باشه مون با قسمت ها برسیم چون این قسمت ها یک جناب آقای ایران میر یه حالتی هستش که چون حالت علمی صرف داراشات برای بله. شنونده کلا جذابیت نداشت ولی بنده از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که حوصله کنند این قسمت ها رو دقیق گوش بدن تا به اون جاهایی که ما میرسیم و میخوایم خوایم اصلی خودمون رو مطرح بکنیم اونجا درواقع ما بتونیم فکت هایی که قبلا ارائه کردیم رو ارجاع بدیم و مبانی بله. دیگه بله مبانی رو اینجا مطرح کنیم در ادامه‌ی نقد‌هایی که در جهان اسلام به نظریه داروین مطرح میشه ما می‌خوایم نقد اندیشمند معاصر جناب آقای دکتر عبدالكریم سروش رو مطرح بکنیم که از دو جنبه نظریه داروین مورد مناقشه قرار میده یکی از جنبه‌ی منطقی و دیگری از جنبه‌ی پیامدهای برخواسته از اون نظریه داروین هستش مورد مناقشه قرار میده از نظر جناب آقای دکتر سروش حتی اگه کسی نظریه داروین رو به پذیره برد محدودی داره بنابراین اگر این نظریه به صورت یک اصل علمی فراگیر تلقی بشه مورد انتقاد جدی هر فردی است که معتقد به نوع اخلاق گرای بشریت هستش از نظر دکتر سروش نظریه انتخاب طبیعی اگه بتونه مطابق تکامل رو مطلق تکامل مطلق تکامل رو توجیه بکنه از توجیه و تبیین تکامل جهتدار ناتوانه لذا این انتخاب طبیعی چون از یک قانون خاصی برخوردار نیست و ما میبینیم که اکثر پدیده‌هایی که در این عالم هستی هستند دارای جهت دارای قانون خاصی هستند لذا دکتر اینجا معتقده که انتخاب طبیعی اگه بتونه مطلق تکامل رو توجیح کنه از توجیه و تبیین تکامل جهتدار ناتوانه نکته مهم دیگری که ایشون میگه در نقد نظریه داروین بطر میکنه ای که این نظریه علمی نیست چرا؟ چون که ویژگی های یک نظریه علمی رو نداره نظریه علمی اولا باید به صورت قضیه کلی مطرح بشه سانیان توان پیشبینی داشته باشه سالستن ابتال پذیر باشه ولی نظریه داروین هیچ کدوم از این رو نداره بلکه صرفاً یه گزارشه لذا یک،, یک،, یک،, یک پدیده و یک گزارهای که فقط حالت گزارش مانند رو داره نمیتونه نظریه علمی به خودش مطرح بکنه مهمترین انتقادی که علاوه بر علمی نبودن نظریه داروین دکتر سروش به این نظریه مطرح میکنه اینه که مغالطه اخز اخلاق از علمه حالا ریشه این مغالطه از نظر سروش ابهامی که در واژه اصله وجود داره داروین متوجه این خود داروین متوجه اتفاقا نبام بوده و اشاره کرده که منظور او از این واژه اخلاقی نیست خود داروین هم معتقد دیگه وقتی در نظریه تکامل و تضاد یه انتخاب اصلح وجود داره خب حالا منظورش از این انتخاب اصلح کلمه اصلح آیه کردم اخلاقی بوده چون خود داروین هم بالاخره میدونسته که نقد کنندها بعدا اینو خواهم برزکین انتخاب اصلا انتخاب اخلاقی هست چی هستش خود داروین هم میگه میگه که این انتخاب اصلا لزوما واژه اخلاقی نیستش ولی خودش در دامی مقاله خود داروین هم به نظر دکتر سروش خود داروین هم در این افتاده اصلح در نظریه داروین به معنای ماندنی تر سازگارتر و قابل انطباق تر با محیط نه به معنای بهترین از منظر اخلاق آقای دکتوری بلد. پرسش پیش میاد خیش. این من به نظر دارم درباره نظریه نظری تکامل صحبت میکنم نه بلد. در نظریه نظری آقای چارز داروین بلد. در اون سال مثلا زمانی که باکتری ها ای ها در یک محیطی قرار میگیرن مثلا در یک محیط قلیایی یک تود باکتری در اون محیط قرار می گیره. درست. باکتری‌هایی که به محیط اسیدی خو دارن درسته. کم کم نابود میشن. درسته. باکتری‌هایی تو محیط باقی میمونن که به محیط قلیایی عادت دارن. برده. حالا از قبل اینطوری تق... پرورش پیدا کرده بودن. مثلا ژنتیکشون اینطوریه. خب اینجا الان اخلاق چکار تکلیفش چی میشه؟ الان اخلاق کدوم مثلا باعث شده که کدوم یعنی اینجا مثلا اخلاقیه که کدوم باکتری بمونه کدومی که هست بله. بشه این با این صحبت آی سروش بله. من بخواهم اگه ایشون روبروش رو بروشو قرار بگیریم درباره این باقی موندن باکتری تو محیط اخلاقی که تو محیط قلیایی که آیا ای اخلاقی هست یا نه این چه توضیح نه. میدن؟ این در واقع اونجوری که من فهمیدم از نقد ایشون کلیه در واقع انتخاب طبیعی در, در نوع انسانه در کیس انسان هست تمام خیلی خوب بحب. پس من الان متوجه شدم دیگه بحب. چون تو نقد آقای دکتر سید حسین نصر هم آقای دکتر سید حسین نصر دو تا موضوع مشترک کرده. به شیوه همیشگیشون بحب. که البته بنده به عنوان یه شخص فرد شخصی خودم میپسندم اینو ایشون حمله میکنن به اون ساختار فرمان روایی اندیشه غرب بله که چون این نظریه داروین یکی از پایهاشه و اصلی ترین پایشه اینا چون حمله میکنن به اون یعنی نقد کلن به اون ساختار دارند میکنن حالا شاید خیلی هم به این بحث کاری نظر یه بحث دیگه که آیه اینجا نقد کردن اون نظریات اون و اینا رو اونجا حالا بعد بعدن, بعدن تون نشست های آینده وارد بحثش میشیم که آی نصر هم مثل آی سروش دقیقا از این جنبه یعنی فقط صرفا تکامل رو درباره انسان دارن مورد نقد قرار میدن آی متحری آی سروش آی نصر و همه ونو که از جنبه دینی و مذهبی نقد مورد نقد قرار میدن حالا علتش هم یه جمله است اونم این جمله کج و اشتباهی که اینا وقتی امه مردم میشنون نظریه داروین میگن ها همون نظریه که میگه ما از نسل میمونیم دقیقه. و این چون بله اینم منم قبول دارم که اگه میخوام بگین این غیر اخلاقی منم قبول دارم چون اصلا علمی هم نیست. اینها پس شما میفرمایین که دارن اون جنبه رو نقد میکنن. بله دقا همین فقط میخواستم خوانندگان هم مثل خودم روشن بشم ببینیم تو چه مسیری داریم حرک A بله بله. که ازقدم دیگه روشن فکری که دینی از همون اول AB که از همون اول بوده، حالم در واقع اون پارادوکس اون ایب درست نشده شاید اصلا این ایب ساختاری اصلا ما حالا اینجا دو مقام نقد روشم فکری دی نیستیم مثلا میبینیم که اصلا حتی نوع نگاهش نوع انتقادش اونم حتی ایاد داره حالا ادامه میدیم نوع نقدی که دکتر سروش وارد میکنه میگه که اون چیزی که از تئوری داروین برمیاد ماندنی تر بودن جانوران پیچیده‌تره اما نمیتوان گفت که آنکه تر است بهتر است بنابراین انتخاب طبیعی یک نوع انتخاب اخلاقی نیست و تکامل داروین به معنای بهتر شدن نیست بنابراین پیامد خطرناک نظری داروین تقلید عالم انسانی از عالم طبیعی است این جانمایی نقدش است مشی طبیعت رو مبنا و میار عمل انسان قرار دادن نتیجه خیلی خطرناکی داره که از تئوری داروین گرفته شده چنین اخلاقی اخلاق چنگدندان است و بر اساس آن پیروزی و شکست ظاهری در صحنه طبیعت و تاریخ میار خوبی و بدی تلقی میشه این تعرض کنایه سروش اول اصلا به مارکسیستا ها اول مطرح میشه چون اون اوائل انقلاب که ایشون در کنار آیتالا مسباح و مرحوم های بهشلی اینا بله اول مناظره های تلویزیونی بلده. داشتن با سرانه توده و چپ های اون موقع مثل کیانوری و احسان تبری و بابا کمیل خسروی و بعد فرخه گهدار و بعد از اون قضایه این فرنگی این نقطه ها رو مطرح میکنه میگه که دیدگاهی که در واقع اینجا از سید قط میگیره که میگه از این که قرآن در مورد کیفیت آفرینش نش انسان به اجماع سخن گفت و به این نتیجه میسی که قرآن از طرح موضوع خلقت انسان هدفی مهمتر از شناساندن پدر، پدران اصلی انسانها داره. آنچه از وضع ورای موضوع مد نظر بوده وحدت کلی جوهر انسان ها بوده نه اینکه وحدت کلی پدر یا مادر یک انسان مثلا پدری داشته به اسم آدم یا مادری داشته به اسم هوا که البته اینم میگم از تنتاوی و سید قد گرفته که همانند رشید رضا و قاسم نعیم و, و محمد عبدو نگاه داشت. نگاهشون به در واقع نظریه داروین بوده اگه شما نکته ای نداریم من وارد نقده مرحوم دکتر صحابی بشم اگه از بنامه, بنامه های کوزشته یا مثلا اجازه بودیم برای که خیلی فاصله نگیریم بله. در نشست های پیش از دهم ده ده هم بود چند تا نکته مطرح شد خواهش. یک چند تا اشاره کوتاه به اونا بکنیم چون دیگه اگه خیلی دور بشیم اونا بیمنام میشه همجان رهاب میشه به حال خودش. بعد باز دوباره هم یک تنفسی باشه بعد دوباره وارد اون نقد ها میشه <تصفيق> یک جا ما در یکی از نشست ها داشتیم اون من درست شما پرسشی کردم درباره این انقطاعی که در علمی که در شرق رخ داده نقدی کرده بودیم که من اونجا تعریزی کردم و عرض کردم که این انقطاع پس از دوران استعمار رخ داد یعنی ما تا قبل از اون اینطور طور انقطاع نداشتیم و مثال زدم که جوانای ما خیلی احساس این احساس خودباختگی امروزشون جامعه ما رو رو به تباهی داره میکشونه ما نه قبلا آدمای بی‌دست و پا و حالا عامی که میگن هیچ پخی نبودیم نه اینطوری نبودیم الان هم اینطوری نیستیم ولی اون موقع یک مثالی زدیم که برای خیلی مثال ساده برای یک لشکر, کشی کید که 100 هزار سپاهی را میفتن بله. اصلا تهیه علیق و آذوقه و سلاح و همه هنگی اینا و اینا فقط شما فکر کنین دو تا مهمون میاد خونه آدم آدم اصلا دست و پا در میره. منصد بله. هزار آدم ظهر می رسیدن یه جایی دیگه بله. میخواستن حالا اینا رو مثلا نار بدن. بعد بخواستن را بیفتن بعد حالا تو اون شرایط اعتباره میخواستن جنگم بکنن هم اینا ای مدیریت خیلی پیچیده و نیاز داشته. که این کار رو میکردن بخشی از فرماندهان سپاه ایران فرماندهان ورزیده این موضوع بودن که بله اینا اصلا ترابری که الان میگن که اون موقع تو شاهنامه با نام سپهکشی ازش بله. اینو اشاره کردیم حالا برای که یک مثال برای امروزش هم بزنیم من گاهی یک دوستان رفته بود آمریکا چند سال پیش گفت که پدرم شروع کرد گفت که برای یک خانم آمریکایی به نام خانم سوزان بوده که آقا ما سه هزار سال پیش اینجوری بودیم و کوش کبیر اونجوری بوده و اینا و خانمه خوب گوش کرده آخرش گفته خب خیلی خب حالا گیریم شما سه هزار سال پیش همه اینا بودین الان چین چی و پدرم ساکت شد بعد من به این دوستم گفتم که خب پدر شما اشتباکت ساکت شد پدر شما با اشاره میکرد به همون سازمان فضایی ناسا که الان داره کار میکنه اون خاانمون میفرستاد فردا صبح میرفت آدمای اونجا رو میشمرد. تناسب می گرفت بین تعداد کشورهای جهان و جمعیتشون ببینیم بالاترین درصد دانشمندان ناسا از کجان من این یک پس اینی که ما هنوز اون جوهره رو داریم حالا چرا اینو تو کشور خودمون نداریم اینا همه میرن اونجا اونجوری میشن؟ این دیگه گفتم این حالا دیگه این اصلا جای بس با خانم سوزان نیست. چون خانم سوزان و صد تا خانم سوزان دیگه نه میپذیرنی بس رو نه سواد آگاهیشون میرسه. این تو جای دیگه باید بس بشه که بعد دوران استعمار چه اتفاقی برای ما افتاد که دیگه حالا دانشمندامون اینجا نه نموندن. همین آدمای باهوش رفتن و اونجا دارن اون کارا رو میکنن. بله. خواهش از اتاق فرمان به ما میگن که از وقت برنامه حتی گذشته یکی دو دقیقه از خواهی میکنیم این بس رو نگه دارید بله, ما بله. قسمت 16 هم بله. ابتدای قسمت 16 هم ادامه این ادامه بس رو بنده اشالله خدمت هم باید خواهیش شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و من نازو خدای یار رو نگه دارد